بسم الله الرحمن و مناسای فقیق خرق الله هستیم با تبدیل خرق الله و به این مناسبه به آیه آمده عنوان حنیفیتی که خداوند برای هست ابراهیم سلام الله علیه حبل انبیاء قرار داد و مخصوصا اینکه مخصوصا شون من الاران شون نسخی که دیدن از این روایت این تعدید رو فقط توی کتاب یک ماهیمه البته در این صقی که به اسم این کتابه فهلاتون سحعلی عمقیامه داردره یه مجموعه بیان و در کتاب ولا ال اومامه <سؤال> به داره فهلاتون سخت و تون صح بشار هست این که دیگه تما احتیاج به احتساب شرایط ثابقه نداریم خود این شریعت هم دنبال احتساب شرایط ثابقه نداریم و این در همه انبیا بوده مثلا اگر پرسون مثلا یهود بعد از اطعال انجام ندیدن اینا مخالفت کردن یا یک نصار این یک نقطه لکی دیستالا شد در, در نسیجگیری ما در محن حدیث مؤثر باشد خب به این مناساعته حدث ما تفسیر حنیفیت و اثبات که اینجای نمیزه حنیفیته و آیه اتا... انطبع ملت اران حنیفن رو رفت شدیم با آیه فلای رو غیرون خرق الله چون ممکن است تمام مقدمات قبولیم رفت رو قبول نکنیم آخری میشه به هم دیگه رفت داد یا نه چون اگر این رفت ثابت بشه مرموش تغییر خلق الله دائماً به از بین بردن نیست مثلا ن کندن موی زیر اگر بگذاره تغییر خلقالله اما اگر بکنه تغییر نیست به خلاف ریش ریش رو اگر بکنه تغییر خلقالله میون این, این معنا رو از مجموعه دوعایه با تفسیر روایت در اورد انساف خالزشکا ن بعد رز میکنم فعلا یواشا جلوع ب تا بن اوضا چیه؟ به کجا پس یه مسئله حنیفیت بود که از کردم من احتمال بسیار بسیار قدید میدم تا مراجعه نکردم و این کلمه در مکه بوده اگر مدینه ما آمده به استعمال مکه چون اهل مدینه خودشون رو دنبال رو به اصطلاح ابراهیم نمیدونستن اهل مکه میدونستن چون موزن کهبر ابراهیم برای بود شما دنبالیشون هستن زمینه به اصطلاق شریعت ابراهیمی در مکه بیشتر بود تا در مدینه مدینه یا مشرف بودن یا یهودی بودن اما مکه به خاطر اینکه که کار ابراهیم و القواه از خودشون رو دنبال رو به همتیت ابراهیم سامولا علیه میدونست و هر حال احتمال قدیز و لبز تهنم اساسا جزو ویژی های مکه باشه اگر تو آیات مذنی هم آمده خلاص تقدیر سهر این از همون به معنایی که در مکی ارازه شد و اصل واجه مدنی نباشید مکی باشه و اشاره به به قصد طریقه ی ابراهیم و تهارتی الان اراز در اران هم هستن ایران هم خودستان هستن صبحی بهشون میان اینا هر روز صبح تو دیگه یا پراستون تو دیگه یا حساب بردا خیلی مقیده به قولاتون به تهارت و نظافت اینا خودشون شریعت ابراهیم این مطلب که همه اجمالا جا افتاده بوده که شریعت از ابراهیم که اول انبیات و اطلاع اصلش لبطه هارت و نظافت بوده. حالا این نحوه نظافت چجوره ظاهرن به استثناء ریشتراجی در بحیه شدیه اختلاف نبوده چون این مثلا این شبه بوده که اگر محاسم بلند شد چون مثلا, مثلا آمده بشه اونطور ته هارتی حاصل نشه این همه این شده توضیحات شده ازمون کن به از این دنبال این بحث بودیم که این حنیفیت چیز تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در کتاب به عنوان ده تا از حنیفیت حنیفیت در کتاب در یک روایتی منصوب به امام صادق بوده که در این کتابی که به نام تفسیر علیه راهینا آمده سر سعود سمتاوز سنتابوس بوده و مرموم مجموع ویان فبرتی در مجموع ویان نرکده از امام صادق موسرم توی این متنها افاقله ها هست این توی این متنهای از اون طرف در که معروف از اونا فخور رضا که افیران عرض کرد این متن آمده با عنوان حنیفیت آمده اصلا دیروز ارز کردم دیروز در در حقیقت کتاب فخور رضا از اینجا فخور رضا است اون یه سفر خورده قبلش فخور رضا نیست یعنی فهر می که فخور از اینجا آله میشه. الهنیفیه علیتی یه اشمان خمسانت رست و در این متنی که در این کتاب موجود آمده اعفاق الله ها نیست ریش گذاشتن هم توش به ترتیب تاویسیش عرض رو و اسنادی هم این ناقصه این یه از اینجا کتاب میشه، اسنادی اصنادی نداره یعنی شاهد قبلش بوده مثلا قاله ساده علی بوده اما الان در این کتاب موجود ما اصنابی از این نداریم بعد از سخوردزا برسابه چون سخوردزا برسابه ترکیب تصور ما آخر مکتب دوم اول برداد در مکتب دوم برداد که از زمان شهر کلینی رضوان الله تعالی شروع میشه که از حدود حدود سالهای سی ساله بیس، بیس میشه تا بیست دا و با خورج شیفتیسی این مکتب دومبرداد که چرا را هر هرز شاید نزیگه نورد در افکاری که ما الان داریم تو حوضای ما الان هست تو رجال ما، حدیث ما، فقه ما، حسول ما کلام ما، ما شاید نزیگه نورد در مدیوم این مکتب دومبردادیم حالا این مکتب برداز مجموعه میراث هایی رو جمع کرده و انساکارم تنقیه کرده ان جهت عقیدش کوچه هم جهت نعقیدش خوبه نه تو جهت عقید اخراجشون میکنه و که ریاضشون ریاضشون رو چی؟ نه تو هم خیلی ضعیف قبول غلط اصلا بر یا حشریه چون لازم نیست که دارم میخورم حتی ان قادو لکوله خبره نه, خبر نه این قادو لکوله خبرن نه یک مکتب خیلی دسته من خواری مکتب خیلی منسجم مثل سوشه توسی و موفی که الان در ما یعنی الان اگر بنا ما در افکارمون تجز نظر ب کنیمیم بازیدونیم که کجا پیدا شده از این افبار از کجا پیدا شده تیج نظر باید بشه راه تجز نظرخه هستن که حالا آ بحث میشم می جای دیگه متعرضش میشیم و که این به کلی در بهان راتون باشه مربون از کل این از نفسه عرض کرده این دوات نیورده مربوم صدوق تنااف شخ توصییه معواده شخ مفیل مرموم صدود در کتاب حساب خودش رو این روایت اومده عنوان روایت و سندش و حسن ظاهر معتبر یعنی اسما معتبر اسما درستن اگر مشکل باشه مشکل همون فعرضی ما یاد مثلا هده من تناسوبی مثلا باشه إلا اسما درستن و چون حسن نجه کتابی داشته که ازم فضال نقل کرده احتمالا یه نسخه کتاب حسن جهنه. یه نسخهی که احمد بردی نحن کرده کلینی هم نسخه اعتمادی نداشته شاید. چون نسخه کتاب حسن فرزال توسط احمد اشعری به قوم آمده که من اون کلینی آزیز یاد نهارم هر حال حالا علتشه الان من نمیسونم من اقدار اعتماد بکنم اما نتیجه نهایی بگیرم نه نتیجه نام تو این متن حساب که ده تا هست، حالا باید بگی که جای دیگه مخلوط داره. لازم هم فاصله هست وش نیست. یعنی این متن حساب با متن حکور یکیه که. از این نکته می‌گم که مثلا کاروزاد مثلاً مسلاً خیلی حسابگریند وارد همون کتاب هستم جام باشه. این کارو بیشتر نیست که همون ده تا زوده همون ام صدوق از پل... ابن از صفوا از احمد برقی از ابن از حسن حتصان... این سند مشکل نداره تو اسماء و اشتقاق اشکال ما اینه که روشن نیست بیشه ما احمد برقی از ابن فززاد حث شد 15 تا دو سه در تو شدن بیشتر که چون احمد... روشن نیست در من احمد برقی کوپر حفظه باشی از ابن فززاد قوام داشت این اشکال اینه نه نه که نه چی میکنم احسان نه قسم احتمال قتر از کتابه نه اینکه که به نظر سما باشه اونه هم اجازه شد باشه مگر انه ابی افتاده باشه ابی درسته ماشه چون شون مسلم و در مناسب آمد پدره باشه عفی یا از عفی افتاده نه سرم یهی روزا هم نیست من موردی کار نکردم فقط اجمالا نگاه کردم هست م میگم شاید این که مرحوم کولینیم نهر نکرده شاید نهر نکره تو نصف احمد عشق نبوده چون بعیده که توی کتاب هایی ابن فرزال باشه و نهر نکنه خوب ما چون کتاب ابن پدر و پسر پدر مخصوصا یکی از مساده بسیار مهم دیست که بعضها تو هم رواجش خوب بود اشتباه نشه کتاب ابن فرزال پدر یکی از مقاله و پتنیه ایشان بحثایی که به مزارب میاد، مثلا همهد ابن زیاد واقفی ما اگر کلینیک رو کنار تقریبا آثارشون خیلی کم بیش و مواماله. تنها راهی که آثار همهد به قوماله مرموم کلینی که حالا خدا آثار ابن فضال واقفی ها فتحی ها یک امار... بحثای خاص خودش داری که این شما در خبار بحثا اما آثار ابن فضال این انصافا آثار بسیار منقه و خوبیه از احوال پسران بهتره و انصافا معنی هم هستی که خیلی اهل کرامت و میگن نماز میخوانت جوابن حشرات و وحوش رو شیر و اینها دور و در جا کاری به صدشون ما رو اینها و ازش اینطور معنی کردن و ببینیم برای ما میگن ولی سالا شده عجیبه این مقامات حتی دوزای معروف ها میگن ابن فضل طراح میکنن برای دوزخ ها دو ابن فضل میگن اون دوزا ولیش میکردن یا شون که میمونه میشه مرمون فرض میگه شکنی نورانی چهره نورانی میگه برگشتن این دلوقات هم آقا برگشته مالی نیستی باید تا آخر پترگی بوده برگشته موسنیزی حالا این که ماکان این فرضی ها بتایید انصافا آسایش شایستگی داره یعنی حتی نقال آسای بسیار خوبی این در بحث خمس هم اگر شنیده باشین که ادوه میگن تمام خمس بسادات دار سرمه ما خوا اگه اینکه برای اینکه در شبیه رسومه ما لازم نشه که جلو پیدا از اصحاب ما عبد الله لكن ارسالش بهترین تنو در خم و خم همینه یعنی بهش باید خلایخ و جملهم داره که بعد از این جلسه سادات باز به سادات ببین و جملهم علاقی بده صاحب حضرتم فرضوا شد من حتی بعضی اونها اونورا هم به هم روایت به لحظه با ارسالش هم میوارده مفضال در باب خمس در مصطف خمس فلایخ و جمعه نهم الهی کلن خمس هم بساداته همه همون توش هست که باید بساداته اون هم بسادات بذاره شد کلن باید بسادات بذاره شد این هم حالا قرار به مناسولاته که ایشان حتی روایات مرسلش هم میگه که این روایات بسیار خوبیه و این صاحب هم مرگ که واقعا هدایت شده دست از فتحیت ورده میگن در مرض موت که بهش بخشتن گولن ندرد عبدالله ذکرن فرق روایت ما نهیم امامت عبدالله اینطور معروفی که وقتیش تلخیم کردن برد جفر به محمد وقتی عبدالله قبول نکرد. اسری از اون در کتاب در روایت نه تا قابل قبول نیست امامتیش به هر حال من وقت بحث این که رجالا میگیم ترسیم هستم نمو خواهد این لیکن به این روایت به ابن فضال واقعا مصدر خوبیه اما از این که کلینی نیورده صدوق هم برده در کتاب خسال توی پقیه نیورده احتمال میدن قومی ها رو سبوت این کتاب گیر داشتن احتمال میدن یقین ندارن احتمال میدن قومی ها روی در کتاب ابن فضال گیر داشتن نحوه تلقی قومی ها مشعره این نحوه تلقی خود در محاسن این رو؟ در محاسن در محاسن که این دیگه نیورده ما هر الان صدور نها در خودش کرده چه در محاسن استیاب نکرده ما از محاسن خب اصلا محاسن زیده پیه انا خیصیه احمد رویه دیادی هستی در محاسن میسنه و در محاسن هستی بقیه نرکنه حسن ما از عجایب کار از این محاسن برقی به واسطه کتاب زیدیه مثلا ابو طالب ببینید که ماشاءالله ممرنه این خیلی عجیبه میشه به واسطه ابو طالب زیدی که جزء اهل زیدیه است و امام ابو طالب ایشون در کتاب اماری خودش از کتاب برقی نام میکنه الان پیش شما اصلا ذکر نشد اینم خیلی عجیب انا که به مکان واسه این بحث توضیحاتش هر کدوم جای خودش لکن ای از کتاب شسان مرحوم صدوق در مقنه نیاورده، اما تو هدایه آورده و در فقیه هم آورده این هم هست من سابقا توضیحاتی به دیارات مختلف را از کردم یکی از کارهایی که مرحوم فقیه داره که اگر بخواد در روانه در دخل تصرفی بکنه یا نکته خاصی باشه او رو به عنوان تطویه میانه کنگ شده говорят مثلا دو سطح یک کلمه چه صدق قبول داشت شما سعی عوض بکنه دیگه با امان رویه نه وریا یا ور اونم در عنوان او بود اون یک کلمه رو عوض کرد صدوق در این کتاب فقید ایده از مسائل دروسه فتوا آورده دیگه بون ربا و رویت ذکر نکرده حالا صادو اونا ذکر نکرده اینجا هم در وقت سوار تصادفاً تو آب بیشتر به حمام می‌خواد کیه بحث استوات من لا ظلال فقیقیشون رو او این عنوان دستوات من اله حمیفیه علتی یه عشد به به اون دفع حمیفیه در اونجا اشون رو و به عنوان روایت هم نه او قبول که داشته اما چرا نیاورده خیلی عجیب برای ما چون خودشون در خسال سند ورده این برای ما یه مقداری تعجیبابه چون هم یعنی واقعا در این جا در مراعات این انسان فوق فوقل ای تنه این که عادیه حالا چطور طور شده ایچون عباید خیلی پر شدی هم که به خوردازاتان تبیر بحنه چون دیگه خودش بودش این طورا که طورا شده که صلوات و زنجیروشا سنن در عمل باشه و یا احتمال اینکه من بهتون صد و خیلی متأثر به مشایخه احتمال داره مشایخ حدیث قبول نداشته ها ها در دین ها اما خب در خلصال نیا حدیث اون غری که ظاهره اجازه داده شای در حکایت کرده اجازه نداده شاید چون صدوق ما ممنوع شدیم خیلی مغید مشایف احتمالا این که کلنگی هم نهورده ایشون هم بانان رواید نهورده احتمالش پیش شما خیلی قدیه که مشایف قوم قبول نکردن به خاطر احمد برقی از درمی فضال هم اشکالی که این به نظرم هم اشکال داشتن توی این مسئله که احمد درقی از درمی فضال پدر پسر نمی کن کسا هم مرقوم با به موکر... عنوان زهن. از, از کردم چون مو که نه که چی گفتین این رو نه خودو خودش داره اینا مجموعه حد شما نمیخواد اینو آثاری بار بکنه من برای تفکر ذهن اینکه ذهنتون باز بشه مطرح میکنم و بعدا هم که این مطلب مسئله ممکنه بعدها نتیجه گیری بشه فقط من یک نکته رو عرض که این نقطه ثانوی نداره نقطه لطیفیه مربون سال و سایه و بعد منوهای برو این قسمت‌های های رو استخراج نکردن حالا ساب و سایه اصل قاعده از نیشون اما آقای برو جلی فتاوار روی سوی مغنه آوردن فتاوار سروع یه خیلی عجیده کار آقای خیلی باشه چون سال و سال آریواریات او رو بوده، فتوار نمیاد. سال و سال تغییر داشت، فتوار نمیاد. ولی تأثیرات آن وجود دیز در جمال احادیث. به اون همون جلد اول جامعهای زمان خودشان چاپ شده، خودشان در ریل حیات شده. شون جلد بعدی است، اما بعدی حیاطیشان خیلی اون نکات تمیین نداره بهترین جلد جمال احادیث که نقاط همون جلد اول زمان خودشان، اون چاپ سندیه، چاپ افسات یک جلد تحارت با مقدمون اون از همه اینها از همه جلدها در اما تو اون هم کم و های دارم من موشیدم مخانه آده چاپش بکنم آده تحقیقش بکنم یکی از نکاتی که در آده تحقیق خیلی مهمده این فتاهای صد اضافه بشه متاسفانه سابست های نکرده حالا میگم اون خیلی مشکلن سابست تحجیب از این گروجه بی شون عبارات بارات این توی منلای احضار که اولاد منلای احضار که بیشن برای احضار عملی ایشانه به اختصاص بی اینجا نداره ما موارد خیلی زیاد داریم که فتاهای صدومه اینا دیگه ذکر نکردن نمیگه محمد از نعبی چون نمیگه قان رو به علیه یا دیگه نه بایده. به نظر من اگر میخواد وسائل هم در بشه الله اضافه در وسائل در جا حاض سر اوخات تحیل به نه مح که تو هااشین جوری بین ترانی اض که باش تو خود م اضافاتن ان اضافات و ملحقاتی که در شاپ جدید شده و او هااشی اوخه برداره خیلی تکیژ میکن. برا برها این هست این مشکل در کتابصدوق رضزان و لا تاعله وجود داره که اینها رو متاسفانه این بزرگان استخراج ایشون اونجا ذکر کرده میگم هرچی فکر کردم فعلا چیز دوست در درمونی روزه در مگر است که یک مشایخ این حدیثو مشکل داشتن دو احتمال میدم این احتمال درست قدیس ایشون در ذهن این مطلب یه حدیث دیگر هم اضافه کرده بسطهش ورده احتمال میدم بخاطر این دخلی تا به چیم کاره کرده چون ایشون از که تا پنج درستر بعدم ایشون فرق و شعر داره این فر باشد ما کسی که مای زیاده ما جوا وجود تری کنیم راست و چپ شهر... این پرو این ثر در ش سال همه هست در تکر رز هست این فرباشه. یه روایت دیگری مستقل ب بایدیم منحتما تخ شهر مثلا میفرکن فرقها لابلمنشارن من نار این هست به باید دیگریم اینشون اینکه و و اضاللا بیا فرق شهر او فرقاً فر لهشر اون به میشار مننا بعد می بر هم سر جفر، احتمالی که من داده هم چون میخوااست این تتصاف بکنه این کاره کردیم. احتمای رو خود من داده هست. میخوااسته اون حدیث دیگه هم وسط این بیاره ترکیب عبارت به هم میخوره دست تصراب ج عیث. این برای ما کاملا واض کهشون هر وقت بخواد تو حدیث یه زف تصف کوچیکی هم بکنه یا یه جنندی بکنه، دیگه بساطه روایت نیمیان هرچی من فکر کرده من از همه که الان خیلی رسیده مواهز خوب ترت میشه که میکنه واقعا یه زبایی لطیفی باشه که برای پیدا کردن منابع اولیه ما خیلی اینا ها مفید باشه. هستانو بر با این و این مقدر در فقیح آمده به عنوان روا و رویان نیست ظاهرا خودیشون قبول کردن ظاهرا اینطور و و و و من لم يفرغ شعره الله من اشاره المنار این اصلا رفیق این حدیث نذاله در کتاب منلاي از اورفری در صفحه 129 شاطر جام درسی اون یکی بحث سواسیه بحث حمامه عنوانش اینه و قال صادو علی السلام من تهذى شعره فلن يفرقه فرغ الله اینجا مستقلی رو بر اون قال صادو برده اینجا با سند آورده به ذهن من این میاد اونجا مخواست زیده حدیث قرار شده تو وسط حدیث اینطور مثلا مثلا سهر دوسته ولی اونجا ما ابدایی احتمالات احتمالاتمون تا بعد از این جاله شما ممکن است فکری یا بعدیا ها بیان یک جواب داریم نقاط مچهول ما البته خود من هم باز هم یک ابحامشی که تو اونجا داره چون داره قال از ساد و علیه السلام اون الان به حسب موجودی که ما داریم مگه چیزی دیگری باشه اون فقط تو روایت مسعده آمده, آمده اونم توی قربل اصناد مرحوم همیری در قربل اصناد همیری پدر عبدالله بن جرفر چون ایشون کتاب مسعده رو قرب اسناد داره از مسعده نرکه و این کتاب رو بوده صدوق بوده کتاب رو اختیار صدوق بوده در اونجا داره عن مسعده ان عبی عبدالله ان عبی قال یک حدیث مفصلی هر کسی لباس لباسی, لباسی تنظیم کنه، هر کسی مثلا زن زن شهر اینطوریه. آخر دوباره من تخریش شرایط فلامو فر رخو فر رخو اللهم انشاء رن من نار ایجوره. هنده اونم که اون عبی من اینکه نصیحشون رو یاد دل خوبه. کل ام مزاری درسته. یکی از چارهای اینکه بر دین چاپ کردن. تا موجود نبود. رضوان الله تعالی برای اولین بار در اختیار حوضا قرار بزنه رحمت الله علیه رحمتان واسه حالا به هرها این هم راجع به این عبارت صدو صدوق این اعتماد کرده اما ارز کردیم دو تا از بزرگان شد و بردیشان و مرموم شیف توسی این حدیث رو نقل نکردند. و علاقه بیره باز هم در خاولده ها می واش هم می ناردو؟ اص اینکه واش تا این صدق مو بالغ من دیگه چون بحث ما، لكن لاقل به نبودنه و میگن عدم قرار این که نیست، در این کتاب القول خورب... در کتاب هم افواله ها جز این دهتا نیامده. این. حالا چه چیزی داره؟ منم می دونم چه چون هم اهل سنت روایت دارن ها ما هم نمی داره روایت دختاری که توش اعفا الله الان پیش ما مصنب نرسیده منحسن از بهم علی ابن ابرالیم و مجموع بیان رو سرد و, و سر کرد که از در یک دومت نرمونی کنند جای دیگه نداریم در یکی دو جایی دیگه که داریم اعفا الله ها میگیست در میان احل سنت هم همین کارو برگویم خود باید احل سنت برگویم کنیم آیا سر نیجال من رو واقعا این چی شده که این رو به خصوص این حالا احتمالاً علم و اندالله دیگاه احتمالاتی شده بگیم روش فکر بکنیم احتمالا من این روایاتی که عرف اللحا و جز و شباره بسیاره بعد متونش رو ارز اون متون روایت عرف اللحا رو بعد ارز میکنن توی این ربایتی که از توی این آن بردم شده توی بعضش داره ولا تشبه هون بالمجوز توی بعضش داره به تشبه هون توی یک روال شد که خیلی هم ناظره ولا تشبه هون بالمشتکین مشتکین که واضح نیست چون من که نگه داره بیا شهرگاه فیلموی از زمان رسولا در ما حدود روشن نیست مثل ابو سفیان دیگران مشرک بودن شماهده تاریخ میخوند که میگذاشن اکسی که اکسی که بعد ریا یا فیلم یا اما نقل نشده با عنوان یک تنده از مشرکی چیزی الان ما برای ما نقل نشده بکنیم. از مشرکی مکه یا حتی مشرکی که در مدینه بودن با عنوان یک از ایرانی ها کسی ها نه هم که نه هست. هم هست از ما دوران هخامنشی و تبع مش اونا ریشه مثل این حالا گیم زمان ساسانی و لرمشیر و خصو خصو خصو این خصوصه پریشون نمایندهای خصوصه از اونا زمان خصوصه طور بوده من نمیدونم اما هایی که ما الان داریم نقشایی که از از ایرانی های قدیم اونا داره خود مشرکین الان تو ذهنم نیست چون میدونی که ما از خود مکه و مدینه الان در تمام دنیا هیچ ای ندونیم از خود مکه و مدینه. این در تمام موزه های دنیا یک نوشته یه سنگی یا کسب شطوری یا چیزی یا پارچه‌ای که در مکه و مدینه یک کلمه شعر نوشته شده باشه یا کلمه‌ای مثلا حال زیدون یک کلمه هم نداری نه شعر داریم این چند بار عرض کردم احتمال اینکه این مؤلفات اصلا جعلی باشه این اسامی رو درست کردم چون الان هیچ در هی جای دنیا نه شعر جاویدی از این دو شهر از یمن داریم از مثلا صمود داریم قبل از اسلام اینم کلی عجایب و شگونی، واقعا عجایب و شگونیه. حالا بریم بحث آشنا بشیم، می‌خوام از ایران که دارم خیلی یک قبلش، چین داریم، مصر داریم، خیلی داریم. چند هزار سال قبل، نه اینکه یه صورتی 1600 سال, سال. اما اساساً مکیان مدینان. اما به هر حال مشکتی که فکر می‌کنم درست باشه، مگر مراد یهود باشه، نه باشه، مجوس باشه. چون قاله به یزدان احمران، شو مثلا. من ما یهود و مجوس از مجوز تشبه کردن شواهدشون مربوط بوده کناریشی دیگه سنت سویلای می‌ده شد. این با اون ربط نخورد. اما با یهود خیلی مسئله چون یهودیا ویش نیزند. یه از سری کشوریمون شده ویش هست اولیه. تجلیم آیات الله من ولی او به یهود بگه چیه؟ اون یکی تشبه او به یهود در بعض از چون یهود خیلی بلند میکردن از ایشاشون این لا تشبه اون یعنی اعفاق اللهیه خیلی بلند اصلا خیلی بلند به قول میشه بلند میتونی شفت اگر این باشه احتمال میدن شاید اعفاق الله ها این جد شده اون دقت چون خیال میکردن اگر اعفاق الله ها باشه به یهود این احتمال برای از این احتمال داده باشه رله خیلی عجیبه توی این حنیفیت توی این درم اصلا غیر از افعاله ها بازد کلامی ما هنیسرام نیم خلاله خلال هم, هم خلال توی متن روایت به سایی هست توی این چند تایی نیست میز خلال برگوشی شده به جاش مزمز و سنشا آمده به جاش فرغوشه آمده باز ف و هر حال افاغالله ها فقط مشکل میشه دیگه هم افاغالله ها احتمال میدن به ولاس غرینه و لا تشبهو به یهود میشه یه حال باید باید برسی بکنیم کاریو لا تشبهو به مجوسه اونی که به ذهن میاد باید لا تشبهو به مجوس باشه اونی که به ذهن میاد چون در همون قصر نهار میکنه که اون دو نفری که آمده بودن و روشان فرشان هم که از این کی از ناراحتن تر نگاه می‌رسیم، چی گفیم که اون آنار نبود، رب بود، رب خدا این تفکیک کردن به فارسی اردی به رب چون به فارسی خدا بنگر، خدا ما، خب، خدا از آنها بگو دیدیم. کار از این خوبه، ده... بعد بکنید به ذهن میاد، این لاسه شر با رو باشه اما لاسه شر چون داره و جد و شواره بلا کشد به این هم خیلی عجیبه احتمال میگم. حد احتمال خیلی برای این احتمال نمیخوام ارزش علمی بار میکنه و بعد در روایات تطوره به این افاوله ها در روایت مصنده ما نیامده اگه قبول بکنید افاوله ها نیامده اون چی که در مرسیل ماست مصنده الان ما افاوله ها نیامده این راجعه فکرین مرسی روایت ارحال این مثل هنیفیت در کتب آمنه آمده چون ما روایت آمنه یک جا بخونیم این بحش رو الان میبنزن برای در در تر ما یه مکن دیگری هم آمده که حاصل اون مثل است. خداوند متعال به حضرت ابراهیم های تکیر فرمودن ته هر, هر و یعنی به عبارت دیگر این دهتا هنیفیت رو این یعنی هنیفیت رو به عنوان مسئلی که اولایی انجام دار چون این بیشتر جنبه حکایته که خدا برن هم دارد همیفیه تعلیم ادهی از روالاست ما داریم که خیلی عنوان از حالا عنوان همیفیه عملا هم دارد اولایی انجام داد عملا این روالایت رو مرحوم اینجا مرحوم به این کتاب بحار نرموزان حالای چه به همونجوری در هفتاد شیش صفحه شست و هشت تاشت ایشون از کتاب مکارمول اخلاق نقل کرده و در حنیفیت اینجا داره انصاده و منصله. این روایت کندیم پیروز دیست کن یه مقدار جاک حنیفیت باطنه توش داره توحید و اینها وزادهو فلحنیفیی خطان و قصد شاره ارز کردن در اینجا پنج تا آورده از اونی که مربوطه به سره فقط قصد و شاره به سری گرفتن اون چار تای بقیه را نهارده بقیه مال بده هست این راجعه بیاره توی نمی افعالله ها نیم نه یکی افعالله ها نیم سفه دیگه هم نیم که اگر کن مشترکی نزا کنیم اون تو چار و باز در همین مکانمال اخلاع دارن هنسا در قال. قال الله عزوجل ابراهیم تتحر این برایت شرح حال اون قصه هست. فأخذ شاره بود احتمال میدم به همون لغت عبری تحنه به همون لغت قدیم شهنه بوده احتمال اصل اون لغت ابراهیمی تحنه بوده فتحر بعد در عربی ترجم شده سم نقاب فتحر فنه تفمن افتیهی حالا این مسئله کرده موهایی دیده وقتای که کنده نفر کشیدن موه این بابی داریم ما از امام سالیه سال میکنه نفر افر حضرت میکنه خوب نیست چیز ما زدیه کمان حتی هم خوب نیست با نوره با نوره اون را از بین دارید فنک این توضیحش از بکنم شوره که نفر افر گوشه انشاء در جان است در حالی که نور بعد امام صادق علیه السلام گفت خییش است نه نه. ثم قال فتحر فعلم ازفاره. ثم قال موهای به اصطلاح زیر نافشو گرفت. ثم قال فتح هر این هم از عجبت می کنم فعلایی که شده اونی که مربوطه به صرف فقط گرفتن سریه، باست این هم افعاله ها زیدیم یک منمون روایاتیست که روشن شد چیمه ها بگم که اون هنیفیت و خداون یکی به از فعلایی گفتن کنم پاک کن فرس و, و ناخنه ها شگره خوت پاک کن سبیل رو جبوده خوت پاک کن زیر برنه ها که خطنه... تمام اینا آمده اما باز توش ایفاالله ها نه آمده اینا خیلی در این طایفه روایت ما هم ایفاالله ها که در اون روایت بود نه آمده خوب دقت کردی بیش البته بنهاش شدن تناسب نداره ببینید به دلیل آیه شریفه حالا خیلی زیاد میشه. زیاد میشه خیلی زیاد میشه دقیق فهمیدین این هم راجع این روایت الان در اینجا که نقل کرده در کتاب بهار در صفحه 68 مرسله اما این در, روا... در کتاب نوادر راوندی ایشان نقل کرده مرانده ها نوادر راوندی من کرارا از کردم راوندی این در اطلاق بیشتر مراد قطف الدین راوندی است همی که قبل ایشان در سحن متحرم هست قطف راوندی لکه این گاهی مراد از راوندی است سید هم از این فیصل فزلالله راوندی است عبار رضا فزلالشون سید با او اصلا فهر حضر کلا اینجا مراد اون آغاز مراد اون سید با قطف راوندی اشتباه نشد نواذیر راوندی به اسنادیه ان موسی بن جعفر ان آباءی علیه السلام قال قال علیا تیل العلی ابراهیم تتحهر حرف شاربه ثم مغیله هو تتحهر اون جدار قال الله هزار جهر فنتفرت تحت جناییم از ثم مغیله هو تتحهر فهلقه آنده و ثم مغیله هو تتحهر فخته این اضافه برای اینکه اعفاء الله رو نداره باز قننه از فاران این نیست ناخوشاگیره اون مطلب اولش قننه از فاران بود این راجبه مقدار نقی که ایشون اینجا کرده راجبه این مطلب که آیا سند این مطلب قابل اعتماد هست یا نه این نوادر راوری هر خودم یک مشکل کار ما همیشه از کل کوشیمه احادیث رو در یه که ما برای ما خیلی راحت تر بود یعنی انصافا خیلی روشنتر و راحت تر بود یک جایشون نداره یک جایی ورزه و این کاششون یک جا میدون که کنم که این روایت که اینجا من کار اینتقان بعد و از دیگر هم گرفت که جای وقت بحث وقتش می... من هم نشست که به در کتاب حتما در بهار ورده اما باید جای دیگری باشه برای حالا من نمیدونم دقیقا, دقیقا در بهار در کجا آورده اما در جاهای دیگری آمده این مطلب اصلا که این که نوازر نوازر راوندی بود الان توضیح هم میکنم در جهاز که مطلب در انا من چون الان در این در کتاب جه هم یاد آمده همین مطلب اما من کلا با هم در کنم کنم کتاب مستذک از یک باب دیگری این چی وسائلم عادت هست من نشد به وسایل مراجعه کنم عالطر باید باشی چون هست نه, نه، وقت نه در بهار احتمالا احتمالاً به احتمال بسیار ردی هست من توضیحاً عرض کردم نواده که به نام نواده بهشون نوشتن این به اینه همون کتاب یاد. یاده چون ایشون اون کتاب رو گرفتن کتاب جهتری رو یا اشکسی یاد رو سند خودشم ذکر کردن یک جا آوردن چون مثلا در جای دیگه نبوده سو هم. این همون چنان اینان جعفر یوسف من توضیحات کافی در اینجا در کتاب جعفر ییاد بین سال‌های مثلا 310 تا مثلا 310 تا این کتاب نوشته شد در مصر و جز میراثه مصریه واس چون نویسنده ی اون کسی که بهشن محمد به محمد بن اشعاع اشعاعیاتن بهش میگفتن هست کردیم اسم دقیقش هم کتب الجعفریه نه جعفریه نه اشتیه کتب اسمش اینه اینه اسم رو معاصر این شخص به نام دارمالستان سالدار سا قاضی نعمان مصری در کتاب ایضاه اسم بارد کتب الجعفریه نه به نحوه توصیف به نحوه اضافه کتب الجعفریه هیرم سرش این بوده این مجموعه روایاتی بوده که مبرنب بوده بوده فکر مکنیم مثلا چون بعد درستان روایات که بوده هم, بود هم. اینه کتاب و تهاره کتاب و صلاح کتاب و لحش کتاب و تفسیر کتاب کتاب بوده معاصر این اشعز ابنان اشعز اسمش روشه کتب ار جعفریه اسمش اینجوری تحبیر میکنه این اسمی که از معاصر ایشان داریم ما تغییر تحبیر به این در کتاب اصل روایت در اون کتاب ارز کرده اولین اجازه ای از این کتاب به بغداد آمده سی این کتاب اصولا در نصف شده به قوم هم نیامده به بغداد آمده توسط تل ایشون دو مرتبه هم گرفته مرحوم نجاشی هم اون رو دیده شیخ هم اون رو دیده لیکن اصحاب بغداد ما از این نر نکرده ان توضیح که دیگه زیاد دادم تکرار بکنم و از که سنیه ها این کتاب دیدن چند نفر ده سنت این کتاب نقل کردن که از همهش مهمتر ابن عدی در کتاب کامل فضا اصلا نفره خود ابن عشقه دیده از نقل مستقیم میکنه ابن عدی در کامل من هم این رویانی که از بزرگان اهل سنت شافعی به شهی رویانی میگن اون نسخه رویانی که با یک واسده با یک خودش این در اختیار سید راوندی بوده، محوم راوندی راوندی همون نسخه رویانی هم. اسمشون نواده بین اصحاب ما با اینکه از سالهای 300 ست بوده ایام طلق و این کتاب بین اصحاب ما در بغداد متاسفانه رواش شده نمی توسط راوندی هم که چاپ نوشته میشه باز هم خیلی رواج پیدا نمیکنه این نسخه که الان پیش ما شده پیدا کرده هزار جیستو خورده این س از هن اوردن به شیراز آوردن به کجا آوردن که همین نسخه را آا چاپ فرمودند اون نسخه که چاپ شده یه نسخهای س که در قرن سیزدهم از هن اوردن دقت میکنیم بس جعفریات یا و والل حدود سیسد و, سی و اولین اجازه این کتاب در بغداد حالا چرا بردازیو نقل نکردن؟ عیده من این همون کتاب سکونی بوده. دیدن چیز تازه‌ای نداره چون کتاب سکونی شاید بشه گفت در حدود شاید بیش از نصف کتاب حذف شده بوده. حالا چراش باشه اخی دیگه توضیحات میدید؟ حال ما تکرارند. این کتاب همون کتاب بوده با اون ها. این چیزای خاصی هم ندارن. هم برواز سکونی موجوده یه مداتی که عمل نکردن. خب دایراً نقل این توضیحاتی مفصل مپسپنه هست کردیم الان ما از روایت سکونی نداریم اون چه که ما داریم الان از خود جعفری یاد نسخه افیق از کتاب نواده راونگی سه در کتاب مکار مخصوص هم ریشه چند به بر برمیگرده که گفتنیم ولذا به لحاظ علمی این صاحب بر او بسیار مشکله چون ما از جعفری یاد در همین دحثه حلق الهی یه دیگه داریم که از همین کتاب حلق و مسلطون انشالله اونجور آجه به مطلب بیشتر توزید و بانمی کنم از که دوباره تخصیل و دیگه اون به ها احتمال ده که به طالب از حد نشه با همین همه کنم کنم کنم اگر در غیر و شیف باشه خوده اینجا درسته احتمال بله احتمال ما رو غیر و اما لا تشباه و